کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده این داستان قوه آبی رنگ یکی بود یکی نبود یه اسکاتلندی یه انگلیسی و یه ایرلندی در ارتش خدمت می‌کردند که تصمیم داشتند در اولین فرصت فرار کنند این فرصت پیش اومد و اونها نقشه خودشونو عملی کردند و به جنگلی فرار کردند اونها دو روز بدون آب غذا سرگردون بودند. هیچ خونه ای سر راهشون نبود و مجبور بودن از ترس حیوانات وحشی جنگل. شبها بالای درخت بخوابند. صبح روز دوم، مرد اسکاتلندی از بالای درخت چشمش به قلعی افتاد و با خودش گفت اگه باز هم در جنگل بمونه بدون اینکه، و جز ریشه گیاهان چیز دیگه‌ای برای خوردن داشته باشه حتما می میمیره. به همین دلیل از درخت پایین اومد و راهی قلعه شد. بدون اینکه چیزی به همراهانش بگه. شاید گرسنگی و ضعف باعث شده بود که هر یک از اونها فقط به فکر نجات جون خودش باشه و دیگرون براشون اهمیتی نداشته باشند. او تمام روز رو راه رفت و دیر وقت بود که به قلعه رسید. اما با درهای بسته، و کش های بدون دود روبرو شد. او فکر کرد دیگه هیچ امیدی برای زنده موندن وجود نداره و کنار دیوار دراز کشید که صدای باز شدن پنجری رو بالای سرش شنید. به بالا نگاه کرد و زیباترین زن زندگی شدید و گفت وای؟ خدا، خدا شما رو برای کمک به من فرستاده. زن گفت، شما چی میخوای؟ اصلا اینجا چی کار میکنه؟ مرد گفت، من دارم از گرسنگی و تشنگی میمیرم زن گفت، پس داخل قلعه بیا اینجا هم خوردنی هست و هم نوشیدنی مرد رو به اتاق زن رسوند و او در اتاق بزرگی رو براش باز کرد. چشم مرد به مردای زیادی افتاد که اونجا خوابیده بودند. زن براش غذا برد و وقتی سیر شد او را هم پیش بقیه برد. مرد یه تخت خالی پیدا کرد و روی اون به خواب عمیقی فرو رفت. حالا میریم سراغ دو نفر دیگهی که تو جنگل منده بودند وقتی شب از راه رسید و خطر حمله ی حیوانات بیشتر شد مرد انگلیسی از همون درختی بالا رفت که اسکاتلندی از روی اون قلعه رو دیده بود به محض اینکه صبح شد مرد انگلیسی چش برگردند و قلعه رو دید او بدون گفتن حرفی به مرد ایرلندی به راه افتاد و همه اتفاقاتی که برای مرد اسکاتلندی افتاده بود برای او هم پیش اومد. ایرلندی بیچاره کاملا تنها شد و نمیدونست بقیه کجا رفتن. و افسرده همون جایی که بود ماند. با تاریک شدن هوا از درختی بالا رفت که انگلیسی دیشب روش قابیده بود. با روشن شدن هوا او هم قلعه را دید و به طرف اون رفت. اما وقتی به اونجا رسید، نه دودی از دودکش به هوا میرفت، نه سر صدایی به گوش می رسید. اما پس از مدتی صدای باز شدن پنجره به گوش رسید و چشم او با زیبا ترین زنی افتاد که تا به حال ندیده بود. او از زن درخواست آب و غذا کرد. زن با لحن دوستانه و مهربان به داخل قلعه دعوتش کرد. مرد با خوشحالی دعوت را قبول کرد و زم خوشمزه ای جلوش گذاشت داخل اون اتاق یه تخت بود که از پرده دور تا دورش حلقه های علماس آویزون بود و همه چیز به قدری با شکوه و خیره کننده بود که او گرسنگیشو فراموش کرد زم وقتی دید که او دست به غذاش نزده پرسید مشکلش چیه مرد جواب داد تا زمانی که ندونه او کیه اهل کجاست و اونجا چه کار میکنه نه چیزی میخوره و نه چیزی مینوشه زن گفت الان برات تعریف میکنم من یه شاهزاده خانوم تلسم شده هستم پدرم قول داده اگه مردی بتونه این تلسم رو باطل کنه یک سوم سرزمینش رو بهش میده و بعد از مرگش او صاحب همه اون سرزمین میشه و با من ازدواج میکنه من تا به حال فقط یک نفر رو دیدم که به نظر میاد از عهده چنین کاری برمیاد و اون یه نفر تو هستی من شانزده ساله که اینجا هستم و به تو هیچ کدوم از کسانی که وارد شدن نپرسیدم من کی هستم از موقعی که من اینجا هستم همه وارد شدند و در اتاق بزرگ به خواب رفتند مردین رندی گفت حالا بگم تلسم چی و چگونه باطل میشه شاهزاده خانم گفت اتاق کوچیکی وجود داره که اگه من بتونم یه مرد رو راضی کنم سه شب از ساعت ده تا نیمه شب اونجا بمونه تلسم باتل میشه و من آزاد میشم مرد گفت من حاضرم کمکت کنم و در خدمت تو هستم به این ترتیب زن به او یک پیف و مقداری تنباکو داد و او رو وارد اتاق کرد اما بعد مدت کوتاهی از بیرون اتاق صدای در زدن اومد و از او خواسته شد در رو باز کنه. مرد جواب داد باز نمی کنم. یه لحظه بعد در به شدت باز شد و ادیه به داخل اتاق حجوم آوردند. و او را به باد مشت و لگت گرفتند. این کار تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد. اما با شنیده شدن صدای خروز آنها ناپدید شدند و ایرلندی نیمه جان روی زمین بلو شد. به محض طلوع خورشید شاهزاده خانم وارد شد و دید مرد خسته و بی روی زمین افتاده و حتی قدرت حرف زدن هم نداره زنی بطری آورد و مایه داخل اون رو به سر تا پای مرد مالید و او کاملا سر و شد اما با اتفاقی که براش افتاده بود دیگه دلش نمیخواست در اون اتاق بمونه شاهزاده خانم از او خواهش کرد مقاومت کنه و گفت شب دوم به این سختی نخواهد بود. بالاخره مرد تسلیم شد و همونجا موند. کمی از ساعت ده گذشته بود که کسی به مرد دستور داد در را باز کن. و این بار تعداد اونها سه برابر دفعه قبل بود. او از جاش تکون نخورد. اما لحظه بعد اونها در رو شکستند و به او حمله ور شدند. مردها اونو گرفتند و به زمین کوبیدند. و اونقدر روش پریدن تا صدای خروس به گوش رسید بعد همه ناپدید شدن با فرارسیدن صبح شاهزاده خانم به اتاق رفت تا ببینه آیا مرد زنده است یا نه و بعد مائی داخل بطری رو به زخماش مالید و او کاملا سر شد اولین حرفی که ایرلندی به زبون آورد این بود که او احمق که به خاطر کسی که حال ندیده بود جون خودش رو به خطر انداخته و تصمیم داره که از اونجا بره و هرگز باز نگرده. وقتی شاهزاده خانم تصمیم اونو شنید از او خواست اونجا بمونه و یادش انداخت که فردا شب تلس باطل خواهد شد و گفت در زم، اگه یه ذره جون در بدنت باشه ماده داخل این بطری اثر میذاره و تو رو سرحال و سالم میکنه. این حرفا تصمیم ایرلندی رو عوض کرد. اما اون شب تعداد مهاجمان سه برابر شب قبل بود و به نظر می رسید با بلایی که سرش آوردند زنده نخواهد موند. صبح روز بعد وقتی شاهزاد خانون وارد شد دید مرد مثل مرده ها رو زمین افتاده. او سعی کرد بفهمه مرد نفس می کشه یا نه اما متوجه چیزی نشد. بعد رو گرفت و زرگان اون رو حس کرد. او فوری ماهی داخل بطری را روی ایرلندی ریخت و بعد از مدتی طولانی مرد صحی و سالم از جاش بلند شد به این ترتیب همه چیز تمام شد و شاهزاده خانوم از تلس آزاد شد شاهزاده خانوم به مرد ایرلندی گفت که باید بره اما چند روز بعد سوار بر کالسکی با چهار از به خاکستری باز خواهد گشت مرد به او گفت: من این سه شب رو به این دلیل تحمل کردم که از تو جدا نشم، پس این حرفها رو نزن، اما در یه چشم بر هم زدن زن ناپدید شد. اما قبل از رفتن خود چوب کوتاهی به او داد تا هر وقت دلش خواست مردایی رو که بعضی از اونها 16 سال خوابیده بودن و بیدار کنه. وقتی مرد کاملا تنها شد وارد اتاق شده روی سه صندلی که داخل اتاق بود، دراز کشید. ناگهان پسر بچه‌ای با موهای تلایی وارد شد. مرد ایرلندی پرسید اینجا چیکار داری پسر خوچولو؟ پسر گفت اومدم برای شما قضا درست کنم. مرد ایرلندی گفت چه کسی به تو چنین دستوری داده؟ پسر جواب داد اربابم همان شاهزاده خانومی که تلسم شده بود و الان آزاد شده. مرد ایرلندی فهمید شاهزاده خانم اون پسر بچه رو فرستاده تا پیش خدمت او باشه. در ضمن پسر گفت اربابش خواهش کرده که او ساعت نه صبح فردا آماده باشه چون همونطوری که قول داده بود در اون ساعت با کالسکش باز خواهد گشت. مرد از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. صبح روز بعد نزدیک ساعت نه وارد باغ شد. اما پسر کوچولوی متلایی سوزن بزرگی رو از جیبش بیرون آورد و بدون اینکه او متوجه بشه پشت لباسش فرو کرد و مرد به خواب امیغی فرو رفت پس از چند لحظه شاهزاده خانم با کالسکه چار اسبش از راه رسید و از پسر بچه پرسید آیا مرد بیدار است یا نه؟ پسر گفت نه زن گفت یعنی خواب شب براش کافی نبود؟ تو بگو اگر فردا همین ساعت برای دیدن من آماده نباشه، دیگه هیچ وقت در عمرش منو نخواهد دید. به محض رفتن زن، پسر موطلایی سوزن رو از لباس اربابش بیرون آورد و او فوری بیدار شد و اولین ای که به زبون آورد این بود که او ندیدی؟ پسر گفت چرا؟ از من خواست به شما بگم اگر فردا ساعت نه؟ نو... برای دیدن او آماده نباشی دیگه هرگز اونو نخواهی دید. مرد خیلی ناراحت شد و اصلا سر در نمی آورد. چرا درست موقع اومدن دختر خواب به سراغش اومده؟ هنگام شب و تصمیم گرفت زود به تا فردا بتونه به موقع بیدار بشه. صبح روز بعد نزدیک ساعت نه او حاضر و آماده در باغ ایستاد تا زن بیاد. اما باز هم در اولین فرصت پسر موطلایی سوزن رو در لباسش فرو کرد. و او مثل بار قبل به خواب رفت. شاهزاده خانم هم ساعت نه با کالسکیه 4 اسبیش ساحه شده از پسرک پرسید. آیا اربابش بیدار شده یا نه؟ اما او گفت نه، او مثل دیروز خوابیده. شاهزاده خانم گفت: "آه خدایا، خدایا برش متاسفم. یعنی خواب دیشب کافی نبود براش." به او بگو دیگه هرگز منو اینجا نخواهد دید. این شمشیر رو از طرف من به او بده و سلام منو به او برسون. او این حرفها رو گفت و به محض اینکه از اونجا دور شد پسرک سوزن رو از لباس اربابش بیرون آورد او فوری بیدار شد و اولین ای که به زبون آورد این بود که اونو دیدی پسرک گفت که اورو دیده و این شمشیر هم از طرف اونه مرد ایرلندی میخواست از شدت عصبانیت پسرک رو بکشه اما تا سرش رو برگردوند هیچ اثری از پسر موطلایی باقی نمونده بود او که کاملا تنها شده بود تصمیم گرفت وارد اتاقی بشه که همه در اون خوابیدن و بین مردها دو تا دوستش رو که با هم از خدمت فرار کرده بودند پیدا کرد. بعد به یاد حرف شاهزاد خانم افتاد که اگه چوب کوچیکی رو که به او داده به بدن اونها بزنه همه بیدار میشن و اول از همه سراغ دوستای خودش رفت. اونا به پاش افتادند و از او معذرت خواهی کردند او هم مقدار زیادی طلا و نقره به اونها داد و هر دو اونجا را ترک کردند بعد مدت زیادی طول کشید تا بقیه را بیدار کرد و اونها را به بیرون قلعه راهنمایی کرد دوری شاهزاده خانم شب و روز فکر اون را مشغول کرده بود بالاخره تصمیم گرفت دور دنیا را بگرده تا شاید نشونی از اون پیدا کنه. به همین دلیل بهترین اسب استبر را انتخاب کرد و به راه افتاد. او سه سال در دشت های جنگل ها سرگردون بود. اما هیچ کس را پیدا نکرد که نشانی از شاهزاده خانم بهش بده. بالاخره از شدت ناامیدی تصمیم گرفت خودش خودشو بکشه. او شمشیری را که پسر مطلعی از طرف زن به او داده بود برداشت. اما به محض اینکه اونو از غلافش بیرون آورد متوجه نوشته ای روی تیغ اون شد و متن اون چنین بود. میتوانی مرا در کوه‌های آبی رنگ پیدا کنی این اتفاق تمی او را دلگرم کرد و از خودکشی پشیمون شد چون فکر کرد شاید کسی بتونه به او بگه کوه‌های آبی کجاست او مسافت زیادی رو طی کرد بدون اینکه بدون کجا میره تا اینکه روشنایی کوچیکی را دید و ما مستقیم به طرف اون رفت نور از داخل خانه کوچکی به بیرون میتابید و به محض اینکه مرد ساکن خونه صدای پای اسب رو شنید بیرون اومد تا ببینه چه خبره او با دیدن قریبه از سوار پرسید از کجا اومده و به کجا میره و توضیح داد من سیصد ساله که اینجا زندگی میکنم و تو اولین انسانی هستی که در این مدت دیدم مرد ایرلندی گفت من سه ساله که دور دنیا رو میگردم تا کسی رو پیدا کنم که به من بگه کوهای آبی کجاست پیرمرد گفت بیا امشب رو پیش من بمون من کتابی دارم که تاریخچه دنیا در اون نوشته شده امشب اونو ورق میزنم تا شاید درباره جایی به اسم کوههای آبی چیزی در اون پیدا بشه مرد ایرلندی شب رو اونجا موند و صبح زود بیدار شد تا راه بیفته پیرمرد گفت تمام شب بیدار بوده و کتاب را ورق میزده اما مطلبی دربارهٔ کوههای آبی پیدا نکرده و بعد گفت اما میتونم کمکی بهت بکنم من برادری دارم که بسیار دورتر از اینجا زندگی میکنه من مطمئنم اون میدونه این کوه کجاست مرد ایرلندی گفت که هرگز نمیتونه این مقدار راه جلوتر بره چون اسبش دیگه توان نداره پیرمرد گفت من میتونم کار تو راحت تر کنم اگر من در سوتم فوت کنم تو قبل از تاریک شدن هوا به خونه برادرم میرسی به این ترتیب سوت به صدا درآمد و مرد ایرلندی نفهمید چطور شد که ناگهان از خونه پیر پیرمرد دیگهای سر در آورده؟ او هم گفت که 300 سال هیچ آدمیزادی رو ندید و پرسید که کجا میره مرد گفت دنبال کسی میگردم که به من بگه کوههای آبی کجاست پیرمرد گفت من کتاب تاریخچه دنیا رو دارم و اگه امشب اینجا بمونی من تا صبح اونو ورق میزنم شاید اسم چنین جایی رو پیدا کنم او شب رو همونجا ماند اما در کتاب یک کلمه هم دربارهٔ کوههای آبی نوشته نشده بود مرد خیلی ناراحت شد اما پیرمرد به او گفت برادری داره که کیلومترها دورتر از اینجا زندگی میکنه و حتما میتونه به سؤال او جواب بده بعد گفت من میتونم کاری کنم که تو قبل از شدن هوا کنار او باشی او در سوتش دمید و مرد ایرلندی قبل از شب به خانه برادر سوم رسید وقتی پیرمرد اونو دید گفت سیصد ساله که هیچ آدمی زادی را و از دیدن او خیلی حیجان زده شده و پرسید: کجا میری؟ مرد ایرلندی گفت، دنبال کوههای آبی میگردم. پیرمرد گفت، کوههای آبی؟ ایرلندی گفت، بله. پیرمرد گفت، تا به حال اسمش رو هم نشنیدم، اما اگه چنین جایی وجود داشته باشه حتما پیداش میکنم. من عربا به همه پرندهها هستم. کافیه یه بار سوت بزنم. تا همه اونها اینجا جمع بشن بعد از همه اونها میپرسم از کجا اومدن اگه جایی به اسم کوههای آبی وجود داشته باشه با این روش پیداش میشه کرد به این ترتیب او در سودش نمید و همه پرنده های دنیا یه جا جمع شدند پیرمرد از تک تک اونها پرسید از کجا اومدن اما هیچ کدوم اسمی از کوههای آبی نبردند کار پرس به پایان رسید اما هنوز یه عقاب نیومده بود کمی بعد جسم بزرگی در دور دست دیده شد و کم کم آسمان را سیاه کرد. او هرچه جلوتر می اومد بزرگتر میشد. به معلوم شد او یک عقاب بزرگه. پیرمرد اونو سرزنش کرد و گفت چرا اینقدر دیر اومدی؟ پرنده گفت من تقصیر ندارم. راه من از راه پرنده های دیگه بیست برابر دورتره. پیرمرد گفت مگه تو از کجا اومدی؟ پرنده گفت از کوههای آبی پیرمرد گفت واقعا خب اونجا چه خبره او خب جواب داد همین روزها عروسی دختر پادشاه کوههای آبیه و همه در تکابوی برگزاری جشن هستند او سه سال بود که با ازدواج با هیچ کسی را قبول نمیکرد تا اینکه از اومدن مردی که اونو از تلسم نجات داده بود ناامید شد حالا دیگه بیشتر از این نمیتونه صبر کنه چون پدرش اجازه نمیده. او بیشتر از سه سال منتظر بمونه مرد ایرلندی فهمید شاهزاده خانم این سه سال رو منتظر او بوده اما هیچ کاری از دستش بر نمی چون فکر میکرد هیچ راهی برای رسیدن به کوههای آبی وجود نداره پیرمرد که متوجه ناراحتی او شد از آقاب پرسید در چه صورت قبول میکنه این مرد را تا کوههای آبی ببره پرنده گفت باید شست گاو رو بکشید و هر کدوم رو چهار تکه کنید تا هر دفعه که من سرم رو برگردوندم این مرد یکی از اون تکه ها رو در دهنم بذاره. به محض اینکه مرد گیررندی و پیرمرد تقاضای اونو شنیدن به فکر شکار رفتند و قبل از غروب خورشید شست گاو رو کشتند و اونها رو چهار تکه کردند و بعد پیرمرد از پرنده خواست روی زمین بشینه تا غذاها رو رو پشتش بذارند اونها یه نردبون بلند آوردند و به کمک اون تونستند همه گوشت ها رو روی پشت اقاب بذارن. بعد پیرمرد از مرد ایرلندی خواست بالا بره و به او سفارش کرد هر بار که اقاب سرش رو برگردوند یه تکه گوشت تو دهنش بذاره مرد از نردبون بالا رفت و بعد پیرمرد به اقاب دستور حرکت داد او هم اطاعت کرد و هر مرتبه که سرش رو برمیگردوند مرد ایرلندی یک چهارم یک گاو رو دهنش میزاشت اونها نزدیک به کوههای آبی رسیده بودند که گوشت تمام شدند و وقتی عقاب سرشو برگردوند مرد ایرلندی چیزی نداشت که در دهنش بذاره اقاب هم خودشو وارونه کرد و مرد ایرلندی به دریا سقوط کرد و درست در خلیج جلوی قصر پادشاه افتاد خوشبختانه اون نقطه زیاد عمیق نبود و اون تونست خودشو به ساحل برسونه وقتی وارد شهر شد همه جا چراغانی شده بود و چیزی تا شروع جشن عروسی شاهزاده خانم باقی نمونده بود. او به اولین خانه‌ای که رسید در زد و از پیرزن صاحب‌خانه پرسید: این همه چراغونی و سر و صدا برای چیه؟ پیرزن که مسئول پرورش مرغ‌های دربار بود گفت: شاهزاده خانم امشب بر خلاف میلش ازدواج خواهد کرد چون او منتظر مردی بود که از تلس نجاتش داده بود. مرد گفت: این سکه طلا رو بگیر و اونو به اینجا بیار. پیرزن رفت و کمی بعد با شاهزاده خانم برگشت. اونها یکدیگر رو شناختند و با هم ازدواج کردند و جشن عروسی بزرگی برگزار شد که یک سال و یک روز طول کشید. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها